فصل یازده امروز ظهر خانه ما وحشتناک بود گرچه خبر مرگ دکتر برایم تعجب آور نبود چرا که مدت ها پیش انتظارش را می اما تصورش را هم نمی توانستم بکنم که مرگش چون به هم ریختگی و آشفتگی در خانه ما به بار بیاورد باید کسی با من به مراسم تدفین نیامد و من فکر میکردم که آن یک نفر باید زن من باشد. به خصوص پس از بیماری سه سال پیشم با آن بعد از ظهر که از هنگام وارسی کشوهای میزم، عصای دست نقره‌ای و عروسک کوکی را پیدا کرد. به گمانم ما اسباب بازی را تا آن وقت فراموش کرده بودیم. اما آن روز بعد از ظهر عروسک را به کار انداختیم. و او مثل مواقع دیگر به رقص پرداخت در حالی که آن موسیقی به او جان بخشیده بود که قبلا شاد بود و در آن وقت پس از آن خاموشی طولانی در درون کشو به نظر آرام و آکند از یاد و دریغ جلوه میکرد آدلایدا به تماشای رقص عروسک پرداخت و خاطره ها در ذهنش زنده شد آنگاه رو به طرف من گرداند چشمانش از اندوهی سبک نمناک شده بود پرسید تو را به یاد کی می و من دانستم که در در همان حال که عروسک کوکی با آن آهنگ کوتاه فرسودش فضای اتاق را غمنگیز کرده بود به چه کسی فکر می کرد؟ زنم پرسید نمیدانم چه بلایی سرش آمده است و در همین حال آن روزها را به یاد میآورد و شاید از یادآوری نفس آن روزها یعنی هنگامی که او ساعت شش بعد از ظهر دم در اتاق ظاهر شده بود و چراغ را به درگاه اتاق آویزان کرده بود بهرز افتاد. گفتم: او در همان سر نبش است. یکی از همین روزها می میرد و ما مجبوریم دفنش کنیم. ادلایدا که مجذوب رقص عروسک شده بود خاموش ماند و من احساس کردم که اسرت و اندوهش مرا هم متاثر کرده به او گفتم همیشه دلم میخواست بدانم روزی که به اینجا آمد فکر کردی که کیست تو میز را مرتب چیدی برای اینکه او تو را به یاد کسی میانداخت ادلایدا با لبخندی افسرده گفت اگر بگویم که وقتی او با آن عروسک کوکی توی این گوشه ایستاد مرا به یاد چه کسی انداخت به من میخندی و به جای خالیش همان جا که بیست و دو سال پیش او را با چکمه های بلند و لباسی شبیه لباس نظامی دیده بود اشاره کرد فکر کردم که آن روز بعد از ظهر آنها در خاطرشان با هم آشتی کردند از این رو امروز به زنم گفتم که لباس سیاه ببوشد و همراه من بیاید اما عروسک کوکی سر جای خودش دوی کشوست و موسیقی اثرش را از دست داده است عدل اکنون دارد خودش را فرسوده می کند از بادر آمده و غمگین است و در اتاقش ساعتها را به دعا و نماز می به من گفت فقط از تو برمیآید که به فکر چون این مراسم تدفیمی افتاده باشی. پس از آن همه بدبیاری و بدبختی که بر سرمان آمد، فقط آن سال کبیسه ی شوم و لعنتی را کم داشتیم. و پس از آن هم که طوفان پیش آمد. کوشیدم متقاعدش کنم که شرف و احترام قول من در گروه این مراسم است. گفتم، نمی توانیم انکار کنیم که من زندگیم را مدیون او هستم. و او گفت این اوست که به ما مدیون است با نجات دادن تو از چنگ مرک فقط پاداش هشت سال خور و و منزل و لباسهای تمیز را پرداخت آنگاه سندلی آورد و به نرده گذاشت. و هنوز هم باید آنجا باشد با چشمانی که از اندوه و خراف پرستی گرفته می نمود حالتش چنان مصمم بود که سعی کردم آرامش کنم گفتم بسیار خوب پس من با ایزابل میروم و او جواب نداد. به هیچ حرکتی امن جان است تا ما خود را برای رفتن آماده کردیم و من به قصد خوشنود کردنش گفتم: "تا ما برگردیم برو به کلیسا و برای ما دعا کن." آن وقت سرش را به طرف در برگرداند و گفت: "حتی نمیخواهم دعا کنم. مادام کانزن هر س شنبه میآید و شاخه‌ای بادرنگ بوی طلب میکند." دعاهای من بی اثر خواهد بود در صدایش عسیانی مبهم و دگرگون نفته بود تا روز محشر همینجا کس خواهم کرد اگر تا آن وقت موریانه ها صندلی را نخورده باشد درم مکس می کند گردن میکشد. و به صدای پای آشنایی که از اتاق عقبی هر لحظه نزدیکتر می شود گوش فرامیدد دیگر فراموش می کند که به کاتا چه میخواست بگوید و سعی می کند به کمک ازایش چرخی بزند اما پای علیلش مانع می شود و نزدیک است که به زمین بخورد درست مثل سه سال پیش که پایش به کاسه لیمونات گرفت و صدای ظرف که توی اتاق قل میخورد، و صدای کفش های چوبی و صندلی گهوارهی با فریاد بچه که تنها کسی بود که افتادن او را دید به همه میخت. از آن موقع به بعد او میلنگد و پایش را روی زمین می کشد. بعد از آن هفته پر رنج و عذاب پایش بدتر شد. طوری که فکر کردیم دیگر هرگز خوب نمی شود. حالا با دیدن او در آن حالت که تعادلش را به کمک شهردار باز یافته است فکر می‌کنم راز اینکه می‌خواهد علی رغم خواست مردم شهر سازشی را ترتیب دهد در پای علیلش نهفته است شاید این قدردانی او به آن زمان مربوط می‌شود به زمانی که توی ایوان زمین خورد می گفت که احساس کرد انگار از بالای برجی به پایین هلش دادند آن دو دکتر آخری که ماکوندو را ترک کردند به او گفتند که خود را برای مرگ آماده کند. یادم میآید او را روز پنجم در تخت خواب دیدم که لای ملافه ها کس کرده بود. بدن تکییداش را به خاطر میآورم که مانند بدن طوله بود که سال پیش تمام ساکنان ماکوندو همراه دست گل های سیال و مواجه به هم فشرده به گورستان حمل کردند. توی تابوت، حضرتش از همان عبوحت چار ناپذیر و تسلی ناپذیر رهایی و دست شستن از این دنیا سرشار بود که من آن حالت را تنها در چهره پدرم دیدم. آنم در طولان روزهایی که اتاق خواب از صدای پدرم آکنده شد و او در باره سرباز عجیب و بیگانهی حرف زد که یک شب ناگهان در اردوی سرهنگ آرلیان و با اندیا در تقیه جنگ سال 1885 سرکلش پیدا شد شکمه و کلاهش با پوست و دندان و پنجه ببر آراسته بود و آنها از او پرسیدند تو کی هستی؟ و سرباز بیگانه جواب نداد و آنها از او پرسیدند از کجا میایی؟ و او باز جواب نداد و آنها پرسیدند با کدام طرف میجنگی؟ و باز هم هیچ جوابی از سرباز بیگانه نشنیدند تا اینکه گماشتهای مشعلی را برداشت و جلوی صورتش گرفت و برای لحظه ای او را ورنداز کرد و با صدای بلند و کننده گفت یا عیسی مسیح این دوک برست. در محوه‌ای آن هزیان وحشتناک دکترها دستور دادند که او را بشویند همین کار را کردند اما روز بعد تنها در نایه شکمش تغییر جزئی دیده می شود. آن وقت بود که دکترها خانه را ترک کردند و گفتند که تنها توصیهشان این است که او را برای مرگی دلخواه آماده کند. اتاق خواب در سکوت فرو رفت، آنچنان که صدای آرام و آهنگین و هم خوردن بالهای مرگ آن بال و همخوردن رازامیزی که بوی مردی را در اتاق خوابهای مرگ به همراه داشت تنها صدایی بود که به گوش میخورد پس از آنکه که آخرین مراسم را به جا ورد تا کسی راه بیفتد و به نیم رخ تکیده آن مرد بیچاره نگاهی بیندازد ساعتها طول کشید آنگاه سنگ ساعت به صدا در آمد و نامادریم دست بکار شد تا یک قاشق دوا به او بدد و این درست موقعی بود که صدای قدم شمرده و پرتنینی از ایوان بلند شد نامادریم قاشق را در هوا نگاه داشت از زمزم کردن دعای خود بازی استاد و با حالتی که انگار از حرکتی ناگهانی و غافل گیر کننده شده است سرش را به طرف چرخاند. من این صدای پارا حتی در برزخ هم تشخیص میدم و موفق شده بود که این حرف را درست در ای بگوید که ما به سوی در نگاه کردیم و دکتر را دیدیم او در آستانه در بود و به ما مینگریست به دخترم میگویم طوله به زور هم که شده وادارشان میکرد بیایند و به آنجا که تابوت را گذاشتند میروم در این فکر که از وقتی که دکتر خانه ما را ترک کرده به این نتیجه رسیدم که اعمال ما به دست اراده برتری مقدر میشده که ما یارای سرپیچی از آن را نداشته ایم حتی اگر با تمام توان کوشش می میکردیم یا حتی اگر آن حالت عقیم و بیهوده یاد را که کار و زندگیش را ول کرد و تنها به دعا کردن پرداخت میپذیرفتیم و که فاصله ای را که با تابوت دارم طی می کنم و به مردان گواخیرویی نگاه میکنم که با خون سردی روی تخت خواب نشستند حس میکنم که اولین نفس هوا را که بالای سر مرده می جوشد یعنی همه یان سرنوشت تلخی را که ماکوندو را تباه کرد استنشاخ کردم فکر نمی‌کنم که شهردار اجازه تدفین را به تأخیر بیندازد می‌دانم که بیرون توی خیابانهای گرمازده مردم منتظرند میدانم که زنها پشت پنجره‌ها در اشتیاق تماشا می سوزند. و همانجا میمانند و نگاه می کنند و از یاد میبرند که شیر روی اجاق سر می رود و برنج آبش تمام می شود اما به گمانم حتی این آخرین تجلی تقیان فراتر از امکانات این مردان سرگفته و غارت شده است قدرت و توانایی آنها برای رویارویی از همان یک شنبه انتخابات که راه افتادند ها ریختند و شکست خوردند در هم شکسته است و پس از آن هنوز معتقد بودند که آنها هستند که در مورد کارهاشان تصمیم میگیرند. و ما به نظر میرسید که ترتیب همه اینها طوری معین و مقدر شده و مال ما را به مسیری میکشاند که قدم به قدم به آن چارشنبه شوم راه میبرد. ده سال پیش گان آن ویرانی و تباهی بر ما نازل شد قدرت و توان جمعی کسانی که در پی جبران خرابی بودند شاید با آن اندازه بود که بتوانند بازسازی کنند. تنها کار این بود که به زمینهایی که به دست شرکت موز هرز رفته و ویران شده بود برویم و لفهای حرز را به جین کنیم و دوباره همه چیز را از سر بگیریم همانها طوفان برگ را ها و بیقرار بار آورده بودند نه به گذشته باور داشت و نه آینده آن را طوری پرورانده بودند که فقط به زمان حال باور داشته باشد و حرص و اشتهای بیش از اندازش را در زمان حال فرو بنشاند به زمان درازی نیاز نبود تا دریابیم که طوفان برگ رفته و بدون حضور آن بازسازی غیرممکن غیر ممکن است طوفان برگ خیلی چیزها را با خود آورده و خیلی چیزها را با خود برده بود پس از آن آنچه بر جای مانده بود یک شنبه بود بر های یک شهر و کارچاه حاضر گراغ انتخابات در آخرین شب مکندو که چهار قرابه شراب در میدان عمومی در اختیار پلیس و نیروی احتیاط گذاشته بودند که سکخور خور کنند اگر آن شب توله توانست به رقم اوسیان و تمرد مردم کهم که چنان پابر جا بود جلوی آنها را بگیرد امروز نیز اگر بود میتوانست اسلحه به دست مانند یک سک کش از این خانه به آن خانه برود و آنها را وادار کند که این مرد را دفن کند. طوله در مورد آنها انضباط سختی به کار میگرفت حتی چهار سال پیش هم که کشیش فوت کرد یک سال پیش از بیماری من وقتی آنها همگی گل و بوتهای باغشان را کندند و برای بزرگ داشته واپسین بر سر خاک او بردند این انضباط در اعمال برانگیختشان دیده میشد این مرد تنها کسی بود که به مراسم تدفین نرفت راستی تنها کسی بود که زندگی خود را مدیون اطاعت و حرف بی بیوقفه و پرتناغذ مردم شهر از کشیش بود سیرا شبیکانها چهار غرابه شراب را در میدان چیدند و ماکوندو دو به شهری بدل شد که گویی مورد تاخت و تاز بربرهای مسلح قرار گرفته است شهری وحشت زده که مردگانش را در گوری دست جمعی دفن می کرد. آن وقت بود که کسی یادش آمد که در این سر نفش دکتری هم بوده است در این هنگام بود که آنها تخت روانها را کنار در گذاشتند و بر سرش داد کشیدند زیرا او در را باز نمی کرد و از توی خانه حرف می زد و آنها سر او داد کشیدند دکتر از این زخمیا مواظبت کن برای اینکه این, این دوروبر به اندازه کافی دکتر پیدا نمی شود که به همه برسد و او جواب داد من دیگر از این بابت چیزی سرم نمی شود آنها را جای دیگری ببرید و آنها گفتند تو تنها دکتری هستی که برای ما مانده باید عمل ثوابی انجام بدهی و او هنوز هم در باز نکرده بود که جمعیت تصور می کرد وسط اتاق نشیمن است و چراغ را بالا گرفته است و چشمان سخت و زردش برق میزند جواب داد هرچه از این بابت می دانستم و کردم آنها را جای دیگری ببرید و همون جا ماند زیرا از آن پس در هرگز دوباره باز نشد پشت در بستهی که مردان و زنان و مکندو در جلوی آن رو به مرگ داشتند. جمعیت آن شب می توانست از کاری بزند آنها آماده می شدند که خانه را با آتش بکشند و یگان ساکنان را خاکستر کنند. اما در این دم طوله پیدایش شد میگویند گویند انگار و پنهان از دیده ها همانجا بوده و برای اینکه مانع از نابودی خانه و دکتر شود همانجا کشیک می داده است تعریف میکنند کنند که طوله گفت کسی حق ندارد دست به این در بزند میگویند که فقط همین را گفت با دستهایی گشاده که گویی بر بیست و چهره وصف ناپذیر و سرسخت چون چهره یک گاو که از آتش خشمی روستایی می درخشید این حالت بر مهار شد مسیرش را عوض کرد اما هنوز از چنان نیروی سرشار بود که آنان را وادارد جمله‌ای را فریاد زنند که فرار رسیدن این چهارشنبه شنبه را برای تمامی اعصار تضمین می‌کند. به سوی تخت خواب که می‌روم تا به مردها بگویم در را باز کنند، می‌اندیشم هر دقیقه ممکن است از راه برسد و فکر می‌کنم که اگر تا پنج دقیقه دیگر خود را به اینجا نرساند، ما تابوت را بدون هیچ اجازه‌ای بیرون می‌بریم. و مرده را توی خیابان می‌گذاریم تا او مجبور شود آن را درست جلوی خانه به خاک بسپارد. پیرترین مردانم را صدا می‌زنم. کاتاوره و تا او سرش را بلند کند صدای قدم‌های شهردار را که از اتاق دیگر می‌آید میشنوم. میدانم که یک راست به طرف من می‌آید و میکوشم که با تکیه بر اسایم به سرعت روی پاشنه پایم بچرخم. اما پای علیلم یاری نمی‌کند و به جلو کشیده می‌شود و مطمئنم که خواهم افتاد و صورتم به تابوت خواهد خورد که کنار دستش سکندری می‌خورم و محکم به آن چنگ می‌اندازم و صدای لبریز از آرامش احمقانه اش را میشنوم که می‌گوید نگران نباشید سرهنگ به شما اطمینان میدهم که اتفاقی نخواهد افتاد و من فکر می‌کنم که باید همین طور باشد اما میدانم که او این حرف را برای دل و جرأت دادن به خودش میزند من که درست عکس این عقیده را دارم به او میگویم فکر نمیکنم اتفاقی بیفتد. و او چیزهایی درباره درختان کاپوک در گورستان میگوید و جواز دفن را به دست من میدهد. بیان که به آن را تا میکنم و توی جیب جلیقم میگذارم و به او میگویم به هر حال هر اتفاقی هم که بیفتد مقدر بوده است انگار آن را در سال نامه نجومی اعلام کردند شهردار به سوی سرخ پوست و آنها می گوید که بر تابوت میخ بکوبند و در را باز کنند. و می بینم که آنها به جنب و جوش و به دنبال میخ خوچک کش می که برای همیشه منظران مرد را پنهان خواهد کرد مرد بی پناب و بی که سه سال پیش برای آخرین بار کنار بستر نقاهتم دیدم و سر و صورتش بر اثر پیری زود رس پر از چین و چروک شده بود در آن هنگام او تازه مرا از شنگال مرگ نجات داده بود نیرویی که او را به دانجا جا کشیده بود نیرویی که خبر بیماریم را به او داده بود به نظر میآمد همان نیرویی است که او را بالای سر من نگاه داشته است تا دا بگوید تو فقط باید آن پایت را کمی تکان بدهی شاید مجبور بشوی از حالا به بعد اصاب دست بگیری دو روز بعد از او میپرسم که چقدر به او اومدیونم و او جواب میدهد دو چیزی به من مدیون نیستی سرهنگ اما اگر خواستی در مورد من لطفی بکنی وقتی صبح مرا مرده یافتی مشتی خاک رویم بریز برای این خورها لاشخورها مرا نخورند تنها به همین نیاز دارم از قولی که از من گرفت از شیوه ترهان و از آهنگ قدمهایش روی کفاجوری اتاق پیدا بود که این مرد از مدتها پیش به مرگ نهاده است ولو اینکه سه سال طول بکشد تا این مرگ محبق ناقص صورت واقع به خود بگیرد آنروز همین امروز است و من حتی فکر میکنم که شاید نیازی به تناب هم نداشت برای خاموش کردن آخرین پردو زندگی که در چشمان سرد و زردش به جای منده بود نسیمی ملایم کفایت می کرد همه اینها را از همان شبی که با او در اتاق کوچکش به گفتگو نشستم پیش از آن که به اینجا بیاید و با ممه زندگی کند حس کرده بودم از این رو وقتی مرا واداشت که عملی را تعهد کنم که اکنون انجام می دهم هیچ احساس ناراحتی نکردم همین قدر به او گفتم نیاز به چنین تقاضایی نیست دکتر تو مرا می و باید بدانی که حتی اگر زندگیم را هم به تو مدیون نبودم اگر شده تو را از بالای سر همه مردم رد کنم می بردم و دفنت می کردم. و او که چشمان زرد و سردش برای اولین بار آرام و بیاشوب بود لبخند زنان گفت کاملا درست است سرهنگ اما فراموش نکن که یک مرد مرده قادر نیست مرا دفن کند